Як мохачала бечан. Ашар тардар пашак. И мучаа ехари سلام ساعت 5 عصر جمعه به وقت تهران این پادکست در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران امروز 17 خرداد 92 یک هفته مانده به انتخابات مهمان این هفته کریم سجادی پور رهبر ایران هنوز آیت الله سید علی خامنه ای من کامبز حسینی هستم و ای اهات ملت, ملت جماعت, جماعت ایرانیان, ایرانیان دنیا میدونین امروز دست کیه مردم ترکیه ملات همه جای دنیا مناظره های سیاسی خنده میشه یه جایی چرا که اصولا رینگ بوکسی به نام مناظره باعث میشه آدم ها بعضی جا سوتی بدن بعضی جا دروغ بگن بعضی جا گم بزنن بعضی جا کم بیارن و بعضی وقتها چهره واقعی شون رو به ملت نشون بدن ولی تو ایران سوتی رو رهبر داد که کلا هشت رفیقش آورده تو یعنی فامیل بازی کرده پارتی بازی کرده بعد میگن چرا تو ایران همش پارتی بازی خوب به خاطر اینکه آی جمهور اسلامی براش رابطه کار میکنه نه ثابته دروغام که قرمونت خود کل داستان انتخابات با تعجب شورای نگهبان مشتاق و اینا یه دروغ نسبتاً بود به قرب و شرق و خودمون گندم که حتی اگه قرازی تو کاندیددا نبود یکی دیگه بود که میزد نگنش نیستم چهره واقع هم که قبنش من همه دیدیم میبینیم خواهیم دید اصلا نیاز نیست که کسی بیا تو منناظره تا ما چهره واقعی رو بشناسیم چرا که بعد از دوتا مناظره ما در ساعت 5 است چهره واقعی آقایان رو رونمایی میکنیم و بدون هیچ ترتیبی اعلام می که جلیلی ظرفیت و عاعرف در این قضی نظرره و حداد شایه پر لایجان و از یه همه کس کشو و روحانی آقا به خودمان اصلاح طلبم باور کنید و قالی بافه من شرداری من چوب میزنم من آیپد و ولایتی حالا شما هی بگه جلی جلی آخرش خود آقا تو گوشم گفت تو میشی نگران نباش رضایی رضایی رضایی میخواد رایتشون بگه بشه یا ابل فضل هیچ کدومشون نماینده ملت ایران نخواهند بود و خیلی خیلی زور بزنن بتونن آبدارخونه به تا یه سر ساموی بدن نتیجه گیری تا الان در مورد او که میخواهد وضعیت آبدارخانه را یه کاری باهاش بکند بدین ترتیب است که خدا و با سلام به شما علاقمندان مسابقه هفته با اعلام اسامی شرکت کنندگان و شمارهاشون مسابقه این هفته رو شروع میکنم جناب آقای محترم با احترام سید محمد قرضی من این قضیه رو به شما ارز کنم اراق من مستاندار بودم دائم شهرهای ما رو میزد این دزفور مقاوم هزاران نفر رو بر اساس این بومهای همه کس کش و اینا میری خب ببینیم که قرعه به نام کی میفته الان جناب آقای محترم سعید ج... اون بعدم باش آم... محمد رضا محترم عارف با احترام من سوال... من به احترام برد. مردم از یک کشورم اینجا میشیدم ولی به هیچ کدوم از تیستای شما جواب نیست آقا غرازی رو برگردون این جواب نمیده سوال اولی از من نپرسیدیم یادتون رو چرا؟ آقی با دباله بابا جن یاده ا... آه بگو بابا جن چی میخواه؟ ب... یادمون ببخشم من, ببخش من یادمون رفت خواه چی میبینی غرازیشون؟ چی میبینی؟ بگو بابای بگو دو تا پدیده بب... شون پشتش میبینم جنم آقای حداد حاضر شما بفرمایده داشت سوال جواب بده بینمش من فکر می کنم سوال درست نیست برای اینکه می تونه هر دو با هم باشه. جناب آقای علی اکبر ولایتی شما بفرمایید. نظر شما راجبه اقتصاد مملکت چیه؟ اولین کسی که در این زمینه کار کرد به مورد اقوال مردم گرفتار نماینده مردم بود، حکیم ابوالقاسم فردوسی بود که شما نگاه می ایشان با تمسک به اون جوانمردی ایرانی و اهل بیت علیه مسلم شاهنامه رو بنا کرد آقای قالیباف نظرش رو به سیاست خارجی چیه قربان بنده فرمانده نیرو انتظامی بودم جناب آقای حسن روحانی آیا قراره که آقای رفسنجانی و آقای خاتمی پشت سر شما اجماع کنند یا چی؟ ببینید باید سانتریفیوج بچرخه ولی کشور هم باید بچرخه جناب آقای سعید ج... چیه آقا اسمش در اومده آخر میگوش آقا گفت و آخر میگه آقا گفت آیم حسین رضاییا اقتصاد چی میگه بابا موضوع دیگه سبک مدیریتی که من دارم من سبک مدیریتی م گلولهای برفیه جناب آقای دکتر سعید جلیلی استدعا می کنیم از شما خواهش می کنیم لطف بفرمایید و خیلی خوشحالیم که الان صدا شما نمیشتنیم خیلی لصف بفرمید من خیلی مخلصم خیلی چاکرم قربون شما برم خواهش میکنم بفرمید خواهش میکنم اقتصاد مال کیه؟ اگر ما بتوانیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم قدرت و اون ظرفیتی که این ایجاد میکنه بسیار چرا قط کردی آقا؟ اگه کی بپرسم های جهلی؟ اگه خود بپر بازم بذار جهیلی بذار بازم کناخت دقیق داشته باشه از این ظرفیت فرهنگی برای اینکه این ظرفیت استفاده نشه توش تکیه کنه و بتونه از این ظرفیت استفاده کنه از ظرفیت فرهنگ در زمینه های مختلف تمام آهاد جامعه و ظرفیت های فرهنگی اون ظرفیت خودشون رو استفاده کنن بعد اینها باز بشود تا ظرفیت ها بتواند آزاد بشه همه ظرفیت ها رو به کار ببریم موجب مانع بروز ظرفیت ها میشه از اون طرف چه میزان ظرفیت های جامعه هستن الان در شهرستان های ما در نقاط مختلف ما که امکانه امکانه همین ظرفیت بدلایل اقتصادی بدلایل های مختلف ما باید این ظرفیت رو ایجاد کنیم که همه بتونن استفاده کنن چند درصد از این رسانه ها در اختیار چه ظرفیتی ت... از جامعه است حالا به هر دلیلی یک بخش عمده ای الان این رو این ظرفیت رو ازش محروم هستن و این رو باید بتونن بیان انجام بدن ما تمام جامعه رو باید استفاده کنیم اون ظرفیتش شکوفا بشه در یه فیلم سینمایی یه جوان 25 ساله تو بوشه خب این ظرفیت داید آزاد بشه ما حتما مدلین ده ها ظرفیت دیگه داریم که اگر به موقع براش این ظرفیت رو ایجاد کنیم استفاده میشه این دوز من زمان کافی نیست ما باید بهش بها بدیم ظرفیت ایجاد کنیم که این بتواند برود ظرف ظرف ظرف ظرفیت زرف خب آقای قالیباف من فرمنده نیروی انتظامی بودم جناب آقای حداد هر چهار تا با هم آقای قرازی سوال غلطه چون پایگاه اقتصادی نداره آقای محسن رضای هیچ کدوم از اینا ها... جنب آقای حسن روحانی سوال به صورت کلی درست نیست جنب آقای محمد لزا عارف نظری ندارم کیو نگفتم؟ نظری ندارم آقای ولایتی خب نمیشه که چهار چهارتار من باید ظرف زرف ظرف ظرفیت زرفیت اینشالله که با شرکت در این برنامه و نظراتتون ما رو تقویت کنید در اجرای این برنامه در اینجا من نظر شما رو به گزارش که خبرگزاری دولتی ایرنا سطح شهر تهران تهیه کرده در مورد همین مسابقه مناظره‌ای که شنیدید جلب می‌کنه. حالا شما مناظره‌های دیشب رو دیدی؟ نه. شد. مناظره کوچیک بود. اوه، نه والا ندیدم. نه. مناظره‌های دیشب رو دیدین یا نه؟ نه دیدم. مناظره‌های دیشب رو دیدید؟ نه. مناظره‌های دیشب رو دیدید یا دیدم. چطور بود؟ اصلاً نبود. آقا مناظره‌های دیشب رو دیدین یا نه؟ دیدم. چطور؟ دار حد مد و کودک مثل مثلا یه چیز طنز بود خب اینم از این گذارش خبرگذاری ایر نراشت در زم آقای جلیلی که از ایشون به عنوان کاندیدای آقای خامنه یاد میشه ما یا نمیگیم یاد میشه می تقصیلی ما یاد میشه رفتن یه جایی یه خانمی بلند شد بلند داد زد وکیلم ایشونم بدون خجالت گفتند بله بزا برای خانم آقای ما رئیس جمهوره میخوان. که نه شعار تابعیت از ولایت تغییر بده جان فدای سید علی باشه من امروز شما رو قسم میدم این راهی که در قدم این قدم میزهید راه پترناکیه راهیه که جان فدایی سید علی می توی علم، توی اقتصاد، توی قرآن، توی فرهنگ آیا شما به این قرآن در مقابل دانشوها، در مقابل کسایی که دوره های قبلی هم پداش کردن و این دوره همجانشون رو گذاشتن اصلا می خورید که سی جانفلای سید علی هستید یا نه انشاءالله هستید هم اخبار هفته گذشته این که پارلمان کانادا با تصویب لایهه ای اعدام زندانیان سیاسی ایران در تابستان 67 رو جنایت علیه بشریت خواند و اون رو محکوم کرد کانادا روز اول سپتامبر رو هم برای بزرگ داشته همه کسانی که در گورستان دست جمعی خاوران به خواهران بخواد سپرده شدند روز همبستگی با زندانیان سیاسی اعلام کرد خلاصه های جمهور اسلامی اگه فکر میکردی که چون این جنایتی مشمول مرور زمان میشه رب پتم در ادم اشتواح کردی زمان. و یک منبعی آگاه از وضعیت زندانیان اقلیت سنی در زندان رجایشر گفت که 20 نفر از زندانیان اهل سنت که به خاطر تبلیغ دینی با اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند حکم محاربه در دست دارند و به صورت مداوم از سوی معموران زندان به دلیل عقیده شون مورد بی احترامی قرار می گیرند معصومه ابتکار عضو شورای شهر که رد صلاحیت شده گفته مسئولیت این رد صلاحیت شدنش بر عهده آقای علی لاریجانی است و گفته که دلیش اینه که در روزهایی که در شورای شهر فریاد می و موضوع پارازیت، پارک پردیسان، برنج های آلوده و گندم آلوده را حشتار می آقایان می و می برایت گران تمام می شود و اینجوری شد که ایشان را رد صلاحیت کردند. و اما یه خبر خوب و یه شاید بهترین خبر چند ماه اخیر برد یک هیچ ایران بر قطر بود تیم فوتبال ایران دمشون گرم امیدواری بر این است که لبنان و کره هم مالی نباشند و رحمان احمدی دروازبان هم سوتی ندهد و اینکه کنسرت امید برای ایران عنوان کنسرت بزرگی است که با حضور ستارگان موسیقی بین المدلی و ایرانی امروز در برلین برگزار میشه کلی خواننده محترم به یاد مردم ایران میخونن تا توجهات رو از این طریق به وضعیت کونی حقوق بشر در کشور جلب کنند آی ابی هم در این کنسرت کنار فرنگی ها میخونه و امیدواریم شما هیچ وقت هیچ وقت دلگی رو تنها نباشید میرسیم به خوب بعد زشت خب شخصیت خوبی این هفته به انتخاب شما مردم ترکیه هستند که طی روزه گذشته در خیابان‌های منتهی به میدان تقسیم تجمع کردند و نگرانند که دولت حزب حاکم یعنی عدالت توسعه و رهبری آقای رجب طیب اردوغان نخس وزیرش انقدر اسلامی بازی در بیارن که کار از کار بگذره و خدا را چه دی و یوش شوشون بلایی که سر ایران و سال 57 در ترکیه بیاد حالا بگزاریم که ها در ترکیه در سالهایی که سرکار بودن هیچ شباهتی مثلا به دو احمد یگانه یعنی جنتی و خاتمی، آیا احمد خاتمی رو نداشته و ندارند اما خب ظاهرا مردم ترکیه فکر میکنن که کار از محکم کاری عیب نمی کنه. خلاصو اینکه اوضاع اقتصادی ترکیه در 10 که اردوغان سرکار بوده خیلی هم خوب شده. ولی مردم به استبداد مطبوعاتی و برخی کارهای دولتیشون اعتراض دارن و خیلی سفت و سخت اعتراض دارن فعلا خونم نمیرن چه شای دنیا رو خیره کردم به کشورشون و بد جوری زدن تو خال آق رجم که هرچی زده بود توی این 10 ساله ظاهرن داره کم کم پنبه میشه و اینکه که آقای اردوغان خودتو بکشی که بشی آلمان از نظر صنعتی وقتی کشورت یکی از بدترین کشورها برای روزنامه نگاره وقتی همچین تجمعاتی رو با خشونت پاسخ میدی به جای بدی در تاریخ خواهی رفت رجب آقا کتابیا آقای مدترم کتابیا شخصت خوب این هفته مردم ترکیه و اون خانومی که راستی قرمز پوشیده بود اسپریق. و اما شخصت بعد این هفته حیعتهای نظارت بر انتخابات و علی لاری نماینده مجلسه که باعث رد به صلاحیت گسترده و فله کاندیده های شورای شهر شده اون هم با دلایلی مثل التزام نداشتن به ولایت فقی و از این جریتی های تفتیش عقاید قرون وسطایی و از این حرفا حالا با کاندیدای ریاست جمهوری هر کاری خاصی کردید با کاندیدای شورای شهر چه مگه یه نفر که میخواد می‌خواد مثلا ساختمون بسازه یا اتوبان بسازه یا فضای سبز بسازه هم باید التزام به ولایت فقیه داشته باشه یعنی اگه طرف التزام به ولایت فقیه نداشته باشه گله دیگه بو نمی‌دن پولا میریزن، اوتوبان ها کج میشن، شخصت بعد هفته حیعت نظارت بر انتخابات و علی لاریجانیست که میتونن وضعیت رو عوض کنن، دست از این خیره سریع و حق مردم خوری بردارن اما بر نمیدارن، خسته نشدین شما؟ و شخصت زشت این هفته صدا و سیمای جمهوری اسلامی است. کار این صدا و سیما اینه که با برگزاری این مناظره های تلویزیونی اجازه بده مردم متوجه بشن که مثلا سعید جلیلی فرقش با آهی مثلا دکتر حداد عادل چیه یا مثلا با عارف یا قالیباف یا اون یکی دیگه یا اینکی دیگه اون موقع ما دیگه مناظری تر کرده که مسابقات گلیا برای بچهای محله موقع من 5 سالم بود کیفیتش بهتر از این بود تر بود شفاف‌تر بود شخصت زشت این هفته صدا و سیماست به خاطر توهین به شعور ملت این ملت هر بار میشینن که ببینن سوگلان آیه خامنه‌ای که رجال هم هستن و قرازی هم جزشون چطوری هستن کیکی بهتره ولی با این مسابقه هوش و جمله سازی و گرگم به هوا روبرو میشن اونم در سطح کودکستان دانش و هنر که من میرفتم آی زرقامی محترم حالا که یاد گرفتی یه مناظره به سبک آمریکایی برگزار کنی توی همه چیزش تقلید کردی بعدش هم گفتی کارشناسا با این اون اون هیچشالا لاغت تو که این از آمریکا یاد گرفتی تقلید کردی از این آمریکایی‌ها که تا صبحشون پشت میدی یاد بیگرفتی می که کاندیده ها باید بتونن نظرم بدن نظر همدیگه رو نقد کنن به جای دیویست تا موضوع چهار تا موضوع میذاشتی و اینقدر مردم رو گیج نمی کردی شخصت زشت هفته صدا و سیما و شما بله شما آیه سرما مهمان این هفته کریم سجادپور است آیه سجادپور محقق ارشد بنیاد کارنگی بر صلح بین الملله که پیش از این تحلیلگر مؤسسه گروه بحران بین الملله مستقر در تهران و واشنگتون بود و همکنون در شهر واشنگتون زندگی میکنه این هم اولین سآل از کریم سجادپور موسیقی انتخابات ایران چقدر برای آمریکای مهمه؟ خیلی م... ممنونم کامبیز جان خیلی خوشالم که با همدیگه هستیم و اول میخوام عذرخواهی بکنم برای این فارسی خرابم من برای اینکه آمریکا به دنیا آممدم و آمریکا بزرگ شدم توی مدرسه فارسی یاد نگرفتم توی آشپزخونه مامان بابام یاد گرفتم برای همین برای این میگیم فارسی آشپز خو. <تص> نه خیلی خوبه متشکرم. انتخابات رئیس جمهوری ایران فکر می‌کنم که برای دولت آمریکا خیلی مهم نیست. برای اینکه دولت اوباما به این نتیجه رسیدن که قدرت اصلی در ایران رئیس جمهور نیست. رهبر آیت الله و چه یکی مثل حسن روحانی رئیس جمهور بشه یا یکی مثل جلیلی آخرش اگه میخوایی معامله هستی بکنی لازم با رهبر معامله بکنی و برای همین فکر میکنم که خیلی امیدوار نیستن که این انتخابات رئیس جمهوری،, رئیس جمهوری سیاست های چه داخلی چه خارجی سیاست های ایران عوض بکنن خب این تحریم هایی که علیه ایران وز شده به نظر تو این چقدر تقصیر ایرانه و چقدر تقصیر آمریکا؟ میدارید سیاست تحریم یه نتیجه خیلی ساده داره یعنی دولت آمریکا دولت اوباما سال اولش خیلی سعی کرد یه معامله بکنه با دولت جمهوری اسلامی نام فرستاد برای آی خامنی دوبار نام فرستاد این پیام نوروز بود موقعی که ایران شلوغ شد بعد از انتخابات احملیجاد دولت اوباما تقریبا ساکت بودن و بعدش هم دوباره سعی کردن معامله هسته بکنن در ژ و بعد از یک سال که دیدن که نه به جایی نرسید الان فکر میکنن که فکر اونا فکر میکنن که خیلی سخت دوست بشی با یه دولتی که لازم دا بمان دشمن درست که یعنی دولت دولت جمهور اسلامی یعنی چرا فکر میکنه خب من فکر میکنم که خیلی ها توی دولت اوباما، و شاید خود اوباما فکر میکنن که برای ایتال خامنی دشمنی با امریکا شد جز به حویت جمهوری اسلامی یعنی برای میگه که خامنی خودش فکر میکنه که دشمنی با امریکا با اسرائیل جز به ستونهای جمهوری اسلامی جز به ستونهای انقلابه و برای همین خیلی سخت دوست بشی با یکی که طور لازم دانه بنوان دشمند ستونش باید بریزی دیگه نمیشه درسته <تصفيق> یعنی هدف تحریم ها خیلی ساده هستن یعنی دوست دارن که ایران رو دولت ایران رو زیرا فشار بکشن تا خامنه این مجبور بشه این جامع زر بخوره مثل آقای خومنی و هدف تحریم نیست که دولت جمهوری اسلامی رو بیاره پایین بندازه فروپاشی بکنم هدفش خیلی ساده است و اونا خودشون فکر میکنن که بعد از یک سال که خیلی سعی کردیم معامله بکنیم با،, با دولت ایران و به نظر من تو این آخرین سیا پنج سال یعنی از انقلاب بعد هیچ دولتی نبود در آمریکا که بیش از اوباما واقعا سعی کردن معامله بکنن با،, با دولت جمهوری اسلامی ولی گفتن خب بعد از یک سال به نتیجه نرسید و الان سعی می کنیم با فشار آقای خامنی بذاریم زیر فشار تا مجبور میشه یه معامله بکنم آقای سجد پور. تا حالا آقای اوباما رو دیدیم نزدیک؟ نه از, از نزدیک بله یه بار دیدمش توی اتاق کوچیک ولی باش صحبت نکردم چجور آدمی که نزدیک میمیش؟ من, من یه بار وقتی که اوباما توی سند بود من بود. سنتر بود من این آخرین 4-5 سال 3-4 بار رفتم جلوی سنت تستفای کردم جلوی سنت میدارم تو خودت هم این کاره کرده آه. و اون موقع اوباما جز به سنترهایی بود که توی بخش سیاست های خارجه. خارجی Foreign Relations آه. Committee میگیم به انگلیسی و اون موقع هم بود و میدونیم دوستام که برایش کار میکنن همهش میگن که اوباما بیشتر وقتا باهوشترین مردی هست توی اتاق یعنی چه اگه جلسه هست راجب موضوع اقتصاد یا سیاست خارجی یا کشاورزی اوباما خیلی آدم باهوشه و آدم جدیه و من وکیل سابق اوباما توی هم همکارم بود توی کارنگی اسمش از گریگ کرگ توی یک بورد مسیسه من کار می کردیم و گرگگ به من گفت که اوباما بر اینکه خودش نصف سفید نصف سیاه از پدرش کنیایی مادرش سفید پوست آمریکایی همیشه یه پلی بود بین دو تا فرهنگ دوتا ام، بین آ فرهنگ های مختلف و برای همین گرگ گفتش که وقتی که اول اومد سر کار ژانویه ۲ 2009. واقعا فکر میکرد که میتونست این رابطه با ایران رو بهتر بکنه، درست بکنه هلری کلینتون که اون موقع وزیر خارجش بود یا باب گیتز که اون موقع وزیر دفاعش بود اونا بدبین بودن، فکر میکردن که نه با این دولت جمهوری اسلامی نمیشه ولی خود اوباما واقعا فکر میکرد با حرفاش، با رفتراش اینا میشد شو. میشد عوض کرد ولی بلی ا... اصلا به مردم فکر نمی کرد او ما فکر نمی کنه که مثلا مردم ایران چرا باید زیر همین با همشین رژیمی تحمل کنن و تمام این ظلم هایی که بهشون میشه و اینا فقط به خاطر به منافع امریکا فکر میکنه و اینکه خودش لزوما فکر میکرد که خیلی ایدالیست بود وقتی شروع کرد فکر میکرد میتونه با این رژیم کنار بیاد ولی مردم ایران که دوست نداشتن هیچ‌وقت هیچ رئیس جمهوری از امریکا با این رژیم کنار بیاد خب باید به محیط نگاه بکنی کامبیز که اوباما وقتی که اومد سر کار 2009 ژانویه بود بعد از 8 سال یا هفت سال جنگ عراق و اون اصلا کمپینش علیه جورج بوش این بود که این رفت به جنگ با دنیا اسلام و کلی پول خرج کرد کلی آدم کشته شدن و من این سیاستا رو دنبال نمی‌کنم من به جای মিলিটারি اکشن به جای حمله نظامی من می‌خوام صبر بکنم engage بکنم گفتگو بکنم و برای همین درسته که هدف اصلیش بود و به نظر من هست یه معامله هستی یا معامله سیاسی با دولت جمهوری اسلامی و هدف اصلیش این نیست که ایرانو ایران دموکراتیک بکنه یعنی اون فکر میکنه حالا نمیتونم بگم اون دقیقا چی هستی مغزش ولی فکر میکنم که آدمایی هایی که دروبرش هستن فکر میکنن که اون تصمیم مردم ایران هستن و مردم ایران باید انتخاب بکنن که که نوع دولت باید داشته باشن و چجوری باید عوض بشه و این تصمیم دولت آمریکا نیست خیلی ها میگن که موضوع حقوق بشر برای آمریکا سانویه است و موضوع هستهی در جبله آیا این درسته و اگر درسته چرا آمریکا در برای نقش حقوق بشر و وضعیت حقوق بشر در مورد ایران سکوت میکنه؟ به نظر من این درسته یعنی اگر آقای خامنی فردا زنگ زد به آقای باما و گفتش که ما دوست داریم یه معامله هستهی بکنیم ما حاضریم کتایی بیم و آژانس هستی میتونه بیاد تمام میتونه پارچین و فوردو و تمام اینجاها رو ببینه فکر می کنم که هدف اصلی دولت اوباما همون هست یه معامله هستی و به نظر من دلیلی که نسبتا ساکتن رجب مو... موضوع حقوق بشر و, و مو... موضوع دموکراسی این است که آمریکا داره میفهمه که دنیا امروز فرق داره با دنیا 50 سال پیش درست دنیا 50 سال پیش با آمریکا, آمریکا و انگلیس میتنستان با هم یه این دولت مصدق رو بیارن پایین درست ولی الان به قول فرید زکریه میگن که الان تي اي دنیا پوست امریکن هستیم دراز که قدرت اصلی فقط امریکا نیست و کشورهای مثل چین و روسیه اروپا این کشورها خیلی مهم هستن و اگه نگاه بکنیم به سیاست امریکا نسبت به موضوع هسته ایران خیلی دارن سعی میکنن همکاری بکنن با دولت چین، دولت روسیه برای اینکه میدونن که ایران ارتباط های خیلی قوی داره با این دولت ها یعنی چه از لحظه سیاسی، چه از لحظه اقتصادی و برای همین فکر میکنن که اگر شروع بکنن، اگه دولت آمریکا شروع بکنه راجع به موضوع حقوق بشر و دموکراسی سبت بکنه چینیا و روسا میگن نه ما هدف ما اصلا این نیست با این که خودشون این خودش میدونه یه استلی هست به انگلیسی میگیم ک داز هو لیو ان گلاس هاوسز dont throw stones چی میشه به فارسی اونایی که توی خانه شیشه ای زندگی میکنن سنگ پرت نمیکنن همون اونایی که خانه شیشه زندگی میکنن سنگ پرت نمیکنن ولی برای همین چینی و روسسا ها دوست دارند که آمریکا ررجبه این موضوع صحبت بکنن و دوست ندارن به خاطر اون موضوع چه هو چه دموکراسی ایران تحریم بکنن و برای همین دولت اوباما نمیخواند یعنی این همینطور که گفتی موضوع اصلی نیست موضوع اصلی موضوع هستیه. حرف آخر این هفته ملت در مورد یک جمله است یک جمله که سید علی خامنه ای آیت الله سید علی خامنه ای رهبر ایران هفته پیش زد ایشون گفت هر کس برود رعی بدهد این رعی به نظام است و مشروعیت آن این جمله رو خب ما بارها ازشون شنیدیم که هر چی میشه رو میخواد بچسبونه به مشروعیت نظام مقبولیت خودش و این رو هم بلند بلند میگه که وسط دوان نرخ تعیین کنه بذاره به حساب خودش که مردم یکی میرن رعی میدن حالا به هر دلیلی میران رای میدن اینا رو تک تک بکنه تایید سلایت خودش یعنی خودش که بیزنسش اصلا شده رد سلایت هرچی آدم حسابی تو مملکته دنبال هر بحانهی هم میگرده که یه جوری یکی پیدا بشه سلایتش رو تایید کنه و بهش مشروعیت بده در نمیشه تو خودت رو نماینده امام زمان بدونی خودت بالاتر حق قانونی بدونی بگی غربی‌ها نمیدونم وحشیان داخلی‌ها فتنه‌ن زمین و آسمون دشمنن هر کی بخواد حرف حسابی بزنه جاسوسه و اون وقت سر انتخابات که میشه بگی که این رأی که دارید میدید مال من ها مال مشروعیت من ها مال مشروعیت نظامی است که من اول و وسط و آخر توه شما نمیشه اینجوری های خاملی حالا مردم میخوان برن رعی بدن یا ندن محترم مردم حتی با اینکه انتخابات آزاد نیست خیلی هاشون میرن رعی بدن که ازر وضعیت زندگیشون تغییر کنه اونجوری فکر میکنن خب میرن رعی میدن یه گروهی هم خب نمیرن رعی میدن اونم محترم اما خودتم میدونی خیلی هایی که میرن رعی میدن پیش خودشون نمیگن که آقا بیا بریم امروز بدیم. مشروعیت نظام رو زیاد کنیم یا اینکه بیا بریم رعی بدیم درجه مقبولیت آقا بره بالا که شبا راحت تر به میدونی که اینجوری نیست آی خامنه ای آی سید علی خامنه ای شما باید به نظر من آخرین نفری باشید اون مملکت که از مشروعیت حرف بزنی شما اصلا نمیتونی دوتا تا از کاندیداهای انتخابات قبلی رو دو سال و نیم بدون هیچ قانون، تشریفات، دادگاه فلان بنداز در حصر خانگی یا بد بشینی حرف از مشروعیت بزنی. نمیتونی ده ها و صدها نفر رو بندازی زندان چون بهات مخالفند بعد حالا اگر مردم رأی دادن، بگی دارن به تو رأی میدندن و میخوان بذارن تو کاسه مشروعیتت. نمیتونی تو چشم مادر سهراب اعرابی و نه داغا سلطان نگاه کنی و حرف از مشروعیت بزنی. مرد حسابی خلاصین که هیچ سدلی بی خیال این مشروعیت و مقبولیت شو یه خیمه شب بازی را انداختی حالش رو ببر چرا میخوای چیزی ازش بگیری که هیچ جوره به قوارط نمیخوره مرد حسابی نمیدونم حالا کی به این نتیجه میرسی که فاتحه ی مشروعیت و مقبولیتت رو خودت با دسته خودت چال کردی تو حیات بیتت خیابونای کوی دانشگاه تو تجمعات 25 بهمن و تو بندهای زندان اوین و رجای شهر و جاهای دیگه اینو دیگه میدونم این هفته دیگه کاشکی ماشکی در کار نیست نیست 19امین پادکست در ساعت 5 عصر در اینجا به پایان میرسه این برنامه محصولی است از کمپین بلال بن حقوق بشر برای ایران و کمپین به عنوان حسن ختام برنامه میخواد که شما بدونید گوهر اشقی مادر ستار بهشتی در نامه خطاب به علی اکبر ناطق نوری مسئول دفتر بازرسی آیت الله خامنه ای از ایشان خواسته تا از تمام ظرفیت های ممکن این دفتر استفاده نموده و راه را برای برگزاری دادگاهی عادل برای رسیدگی به پرونده قتل فرزندش هموار کند تا هفته دیگه و پنج عصر دیگه هر کی میخواد رعی بده بده هر کی میخواد رعی نده نده فقط فوش خار مادر به هم دیگه ندین خواهش میکنم بیا باید